سلام آقا ببخشید شما هم خارجی هستید؟ سلام بله من ایتالیایی هستم این یک کتاب آموزش زبان فارسی است درست است؟ بله اسم این کتاب آموز زبان فارسی است می توانم آن را ببینم؟ بله بفرمایید این کتاب برای خارجیان مفید است آموزش آن ساده است بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد می گیرم. خودتان فارسی می یا به کلاس می روید؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم. در دانشگاه بین امام خمینی فارسی یاد می گیرید؟ نه من در کانون زبان ایران فارسی می خوانم. قانون زبان ایران بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند نه دانشجوها می توانند آنجا زبان انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند